قرآن کریم آخرین کتاب الهی و آسمانی است و به جهت این که آخرین هست جامعه هم هست کاملترین بیانات خالق متعال و رب العالمین در قرآن نازل شده آنچه لازمه زندگی مادی و دنیایی هست و برای زندگی معنوی احتیاج هست هر مقدار که لازمه این دنیا هست و اون دنیا هست در قرآن به طور کامل خدای مطال قرار داده و بر قلب شریف خاتم انبیا نازل شد و ایشون به دولب مبارکشون قراعت پرمودن کتاب از جمله امیر سلام سامون علیه املا کردن و واسطه شدن این کتاب به دست ما برسه یکی از توفیقاتی که ما داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم قرائت صرف این کتاب هست همین که فقط قراعت بشه به مفایی میشم توجه نشه خود قراعتش عبادته فقره او ما تیست سلامین القرآن اون مقدار که دارید قراعت کنید دستور رسیده امره فقره او امام صادق سلامون علیه در کتاب کافی شریف هست فرماد مؤمن حداقل روزی پنجه آیه باید قراعت کنه کپش پنجاه آیه است این قراعت فوایدی داره فایدهش خیلی زیاده یکی از فوایدش آرامشه خیلی از قبل دارایی که دارن همکونه که دارن آسایش دارن تو زندگی ولی معلوم نیست که آرامش هم داشته باشن از عوامل آرامش بخش قرایت قرآنه صرف قرایتش خب در ماه رمزان معمول هست مومنین قرایت میکنن و سعی میکنن که روزیه جوز و در طول ماه یه قتم قرآن داشته باشند. یکی از دعاهای سعیف سجادیه از امام سجاد سامون علیه دعایی هستش که حضرت بعد از ختم قرآنشون این دعا رو میکردن و به خداوند عرضه میداشتن که من بعد از قراعت این کتاب تغازه دارم از شما قبل از اینکه ترازوهاش رو حضرت مطرح کنه در وصف قرآن مطالبی رو عرضه کردن و برای ما فرمایش کردن جهت آشنایی با این کتاب مقدس قداست قرآن اینقدر زیاد هست که خداوند برای اهمیت دادن به این متن یه سپاتی رو درش قرار داده در این حال که اوراقی هست ورقهای هست و متنی در این ورقها نمیشته شده و بین دو جلد به عنوان یک کتابی قرار داده شده یه موجودیت و یه حیاتی خداوند برش قرار داده مثلا از سپاتی که قرآن برایش برش مردن هم خودش در قرآن خدای متعال فرمایش کرده و هم هزارات عمه در توصیفش مطالبی داره یکی این است که شفاوم. شفا دهنده هست هم از اعتقادات ناپسند و ناجور انسان رو بریمی داره اگر اعتقادات ناحقی انسان داشته باشه تصیم میکنه و از مرض بابرهای بعد انسان رو برون رفتی براش درست میکنه و از جهتی میتونه به علاوه تصیم زهن و ذهنی قلب رو هم شفا بده قلب مترادف روحه ما یه جسم داریم یه روح داریم اون چیزی که شفا دهنده روح هست و قلوب هست قرآنه قراءتش و تلاوتش و باورمندی مفهوم و معانی که داره یه جهته ولی توسل برای شفای امراض و مرضهای قلبی هم یه بودش هست انسان اگر به این کتاب تمسک پیدا کنه مرضهای قلبی و روحیش شفا پیدا میکنه از کینه و تکبر و عجب و حسد و افراط و تفریدهایی که انسان در باورهاش داره با توسل به قرآن میتونه شفا پیدا کنه اون چیزی که موجب شفا میشه اون توسلی که در واقع بایسته هست برای ما و در توان ما هست همین قراعته وقتی انسان قراعت میکنه داره اظهار میکنه که خدای من مطالبه تو دارم میخوانم حرفایی که به من داری مطالبی که در این نامهی که به من نوشتی من دارم قراعت میکنم و این قراعت من حاکی از تسلیمه هرچی در این آیات هست حالا اون رو من متوجه میشم یا متوجه نمیشم تسلیم میشم من دارم اعتنام میکنم به کلمات شما من دارم اظهار میکنم که این مطالب رو میخوام خواهانم و میخوام که رعایت کنم هرانچه نزد شما هست به در نظر شما هست اون رو من میخوام رایت کنم یادم هست یه عبارتی از آیتولو مشکنی که یه رزمندهی سآل کرده بود گاهی مثلا من در نمازها متوجه نمیشیم چی میخواییم از خدا؟ و این مطالبی که از کاری که قراراتی که در هم دو سوره داریم یا مثلا سجده و دیگر اسکاری که تموز داره متوجه نمیشیم چی میگیم ولی خب چون گفتن اینجوری بگیم و گفتن واجب هم هست نماز خوندن و عدای این قرارات ما داریم میگیم ایشون فهمدود یه دونه این نمازه رو به من بدین همه عبادات به ظاهر فهمیده خودم رو به شما میدم در مورد علام تبا هم این داستان هست که بهشون ایشون عرض کرده بودم خیلی از مؤمنین متوجه نمیشن قرآنشون دعاهای کمیلشون نمازهاشون متوجه نمیشن چی میگن بعد خب راحت میکنم ایشون پرمودود چون با اعتقاد هست من همه یه که در کارها و عباداتم هست رو میدم یه از این نمازها رو به من بدن خیر به ثوابش رو میگه خدای من نمیدونم دقیقاً از من چی میخوای ولی هر چی که بخوای من تسلیمم سلامانی کن خیلی نکته مهمیه همه اون چلی که شما میخوای من تفصیلن نمیدونم اجمالاً میدونم که از من درخواست داری همه رو من تسلیمم هر جا پیش بیاد و بفهمم که کاری هست من رعایت میکنم این نگاه در قراءت موجه به شدن امراض قلبی و روحی میشه چه بخوایم چه نخوایم لذا از اصافی که قرآن براش برش مورد شده صفت شفا هست داره پیه شفا اون و رحمه در قرآن در این عبارت شریف امام سجاد هم همینطور از جمله سفاتی که برای کتاب قرآن که ختمش گرده در بعد ماه همیزان داره این دعا رو میخونه همین هست که شما قرآنی هستی که نازل شده بر ما و شفا هست باز یکی از سفاتهایی که داره از اوصاف قرآن این هست که میفرماید یه علمی هست علم نجات لا یزل من اما قصد سنتهی هرکی بهش تمسک پیدا کنه هیچ قدرتی نمیتونه به قصد حلاکت به قصد از بین برونه انسانی که قراعت قرآن میکنه کاری انجام بده یه همچین نگهبان بزرگیه اگر کسی به قرآن تمسک پیدا کنه و به ظاهر با قراعتش سلم و تسلیم شدن خودشونشون نشون بده هر کس تمعه بکنه در انحراف قرآن مانع میشه خیلی مهمه یه وقت میگه مثلا بخانید که اعتقاداتتون قوی بشه در مقابل خصم و دشمن بتونیم مثلا حرفی برای گفتن داشته باشیم خب این خیلی خوبه اما اینجا اینو نمیگه حضرت میفرماید که اون کسی که قرائت میکنه تلاوت میکنه قرآن رو و سعی میکنه به قرآن عملا احترام بگذاره قرآن مانع میشه از اینکه دیگران فکرشو ببرن اعتقاضاتشو مثلا به انحراف بکشونن خیلی نکته مهمیه معلوم میشه فقط این ها و مثلا نوشته های داخلش نیست یه حیاتی داره برای خودش یه توامندی خداوند بهش داده در این حال که به ظاهر جسمه و یه شعیتی مثلا به ظاهر داره اما جام داره توامنده قدرت داره لذا باید بهش تمسک پیدا کرد تمثل پیدا کرد شاید شنیده باشید از آیت الله عزم و یک کلیفی هم هست که ایشون میفرمد قرآن ادل عیمه علیه مستقامه دارنیشون این که ادل یعنی چی؟ یعنی میشید جاش بذارید قرآن رو جای عیمه بذارید عیمه رو جای قرآن بذارید مورد استفادهش یکیه منطقه ما چون از محسوسات به نمحسوس دست پیدا میکنیم از عیمه علیه مسلم به مثلا معانی و معنویات خودمون رو صحب میدیم مثل خودمونن بشرن و یه جورایی راحتتر میشه حسیش کرد ولی قرآن یک کتابه مثل کتاب های دیگه به ظاهر فرقش این هست که کلام الله هست اما در روایت داره که قرآن ادله عیمه علیه مسلمه این کلام خدای بحشت نیست از روایت کلیفته ایشون مثلا داره داره النظر الى علیه سلام علیه عباده انشالله خود رو نصیب میکنون و اسی رو ببینیم الله نظر به حضرت عبادته در قرآن مورد قرآن هم داره النظر الى المصحفه عباده نگاه به قرآن هم عبادته مثل نگاهی که به حضرات میکنه انسان مثل نگاهی که به امید المومنین داره خب اون اگه حاصل نمیشه این هست و از این جور صفات که تشابه داره با سپاتی که علی مصطفی علیه السلام در قرآن هم و در احادیث ذکر شده که قرآن همون گونه است اگر بتونیم با قرآن اندس بگیریم مثل اون صبایم ما گاهی با حضرات گاهی با قرآن این دیگه انسان رو بیمه میکنه از خطرات اعتقادی از خطرات معنویی که امروزه پیدا شده قبلا هم بوده در آینده هم خواهد بود مدعیان دروغین ادعا میکنن که مثلا ناجی هستن ادعا میکنن که عارف هستن اتعا میکنن که مثلا میتونن انسان رو از کف و عرش ببرن و حال اینکه خودشون منفیه مثلا کف هستن و خیلی پایین تر از این حرپان بعضیشون در همین استانم آدم دقیقت هم لازم نیست بکنه دیگاه میکنه کم نیستن یه جدره انسان دقت نکنیم، ببینه نوامیشش در خطر میبتن مالش در خطر میبتن واقعا آدم تعجب میکنه یه مثلا چل میلیون بدین یه زمینی برای حضرت میخواییم بخریم مثلا کشاورزی بشه که یاران حضرت اونجا شاغل بشن یکی چهل میلیون بدین بندگان خدای خیلی مثلا ساده بود ساده لو یکی چل میلیون کدوم زمین کجا کدوم یاران یا نوامیس مردم رو جمع میکنن اردوی تاب زمان داریم سامان یه هفته اردو خدمت به امام اصل کجا؟ چرا فقط مثلا اوناس رو میبرید برای خدمت مگه مردا مردن وقتی اینسان تمسلک و توسل به حضرات معصومین پیدا نکنه به قرآن پیدا نکنه به دست اینا میفته چون طبعه انسان یه طبعه گرایشی گرایش داره به معنویات همه انسان ها در همه مذاهب و عدیان این گرایش طبیعیه جز خلقته وقتی از راه درست این گرایش تمنی نشه انسان ها می به این دستانداز ها و کارهای خجالتبار <تصفح> <تصفح> حضرت عرض میکنه خدایا از افتتن المعونه علا تلاوتهی و سحل تجوازی علسنتنا به حسن عبادتهی فجعل نامی من یر و حقر آیته و یدین و لکه به اعتقاد تسلیم به یه ای خدای حالا که به من این فرصت رو دادی و این انایت رو کردی که من تونستم آیات قرآن رو تلاوت کنم و قرائت کنم این فای فایز، فای تعلیله معمولاً بعدش نشون میده که معلول قبلش چیه قبلش این هستش که خدایا این قرآن رو به عربی نازل کردیم و من تونستم قرائت کنم حالا که تونستم قرائت کنم این رو نصیبم کن. اَفْتَنَنِ الْمَعُونَةَ عَلَى و وَ سَهَّلَ تَجَاوُزَ الْصِّنَتِنَا بِحُسْنِ که من توفیق پیدا کردم، قرائت کردم این کتاب رو و قرائت می‌کنم، فَجْعَلْنَا مَنْ غَرَّاهُ وَ یه کاری کن حق قرآن رو رعایت کنم. حق قرآن عمل به قرآن. عمل به قرآ اقلش عمل به تقواص تقوا حالا این دلایلش در خود کتاب اومده بحث شاهد دیگه شده آموزشش مطرح شده تو همین استان هم چندی برنامه آموزشی برای هم برادرها هم برای خواهرها متاخهر های از اساتید حوزه ها. مازن جلساتی رو داشتن و عدلده قرآنی روایش رو دنبال کردن که کمترین حق رعایت قرآن تقواست تقوا تقوی عبارت است از عمل به واجب ترک هران این کف دینه رعایت قرآن حتی اقلش همین است که ما تقوا رو رعایت کنیم تقوا هم رعایت نمیشه نگر به مراقبه مراقبه چیه؟ دقیق کنید من این ارزم حالا بیانم الکن دقت می طلبه. مراقبه داشتن نیست که آدم همه کارهاش رو ام از مثلا کارهای ممدوح و مستحب و اینها همه رو رعایت کنه مراقبی شروعی داره شروعش این هستش که به گناه نزدیک نشین نه که گناه نکنی گناه نکردن کار هر کسی نیست انسان که به محلکه گناه بیفته نمیتونه گناه نکنه انسان های عادی که منم جز همون انسان ها او هدیه از افراد هستن که در دهان گناه میرن و مشکلی پیدا نمیکنن. عموم مردم نزدیک گناه نباید بشن یعنی چی؟ مقدمه گناه رو با اختیار درست نکنیم زمینه گناه رو به دست خودمون با اختیار خودمون پیش نگیریم این میشه مراقبه مراقب باشیم که به دست خودمون زمینه گناه برای خودمون درست نکنیم این از ما برمیان بقیهش دیگه حرفه اصلا نشاید نمیتونه انسان در مهلکه گناه بندزه خودش رو از گرفتاریش فرار کنه محال اما این راحته راحتتره که مقدمه و زمینه گناه رو پیش نیدین این مراقبه میشه تقوا این حد رو باید رعایت کنیم رعایتی که حضرت درخواست میکنه از خدای متعال که من رعایت قرآن رو بکنم رعایت تقوا هست برای آیه تقوا این هستش که زمینه ی گناه رو مراقب باشیم به دست خودمون به وجود نیاریم. خدا رو قسم میدیم به حق خودش و به حق قرآنش به حق انبیا اضامش ملایکی مقربینش به حق خاتم انبیا و قرشی های گرامش به ما توفیق بده بتونیم در خدمت قرآن باشیم متوسل به قرآن باشیم و اون رعایت حقی قرآن رو به جا بیاریم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد الله <تصفيق>